الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ان لاخذ تعالى عذرا اللهم این که آیا نکته در استحراب و حبوبت عنوان حق مولا و ظلم بر مولا و این قبط فاعلی سیانه ما از این راه وارد شدیم و از شد به این که شواهد عرفی و اغلایی موافقه با این مطلب نیست چون از که ما بر این که آیون مراجعه بکنن و راحت تر باشه بر مبنای کتاب مرحوم استاد اصباح و اصول قرار دادیم راجب این البته در همین جلد به حساب تسال سال 47 یا دو دوی نسباها رو اصول بالا 47 بلقا. در صفحه 18 البته از صفحه شروع در صفحه 18 مباحث رو که اعز کردیم اگر بخواهم تقریب بکنم ما راه از رفتیم کلا از بحثم شدیم مرحوم استاد این رو به اصطلاح فرمودن به این که بله مقام اول ایشون تحت تقسیم مقام کردن داره خدا های مراجعه بکن اون بحثی رو که ایشون در جهت اولاد به خودشون از مقام اول باز اسم مقام اول قرار دادن در سفه هیچ جهت اولاد بحث از حرمت الفعل متجربه به, به نفس ملاک حرام واقعی ایشون بحث و اینجوری قرار دادن که بگیم مثلا این شرب خمر این شرب آب آب رو که خورده با عنوان اینکه این خمره این فعل خود فعل حالا با خود فایدش کنا خود فعل حرامه با عنوان شرب خمره عنوان حرام واقعی به با همون نیمان جهت دوم این که این شرب آب حرامه با عنوان تمرد چون صدق تمرد و اسیام این ایشان بحث و اینجوری برادادن در این مقامی که متعرض شدن در جهت اولا اون وقت یه مقداری متعرض فرم برده جهتین شدن که آن مراجبان واضحه شدیه احتیاط به شمع نداره از سطحه نونزه ایشون جهت اولا رو سعی کردن به اصطلاح توضیح بدن ایشون از این راه بیشتر که همین عنوان این که به سرزاه خیلق ارادیو غیر ارادیو از این قسمت ها بارد شدن از صفحه 19 تا صفحه 21 سر کردن شهر ردن تو آگر این شرب آب که اخیال کرده خمره به ملاک شرب خمر حرام هست یا نه آن تو اخیال کردن نیست شون قبول کردن که نیست لیکن از یه راه های اخیالی و غیر اختیاری و از این راه که متعارف بوده بارد شدن به نظر ما اگر از اون راهی رو که ما عرض کردیم وارد می شدن بهتر بود و حل قصه این بود که آیا ما از راه به اصطلاح تفسیر قوانین رو از راه نظام عرد و مقلا یا از نظام قانونی مثلا ایشون روشن وجه در قطعه 20 به لحل با احکام شریعت خوابه اصول المساهله و, و المفاسطی متعلبات ها خب این همون نظام قانونی این رون نظام قانونی همینه از این راه وارد می شدن خب به نظر ما بکر از سطح این راجعه دیاد مراجعه که مقابله کنن اون حرفایی شما ما حرف کردیم مثلا محل مناسبش اینجا بود که این به فعل سرایت نمی کنه و اما الکلاف جرفت ثانیه این بحث خب بحث دیگری این میشه این شربا آب نه به عنوان شربا آب اون که قویهه میشه اما با عنوان شربه هم و به عنوان تمرد و مولا آیا این حرام میشه این شربا آب به عنوان تمرد و نافرمانیت مولا این موجب خود قبح فعل و حرمت فعل میشه ایشون در اینجا از همون صفحه 21 وارد بحث شدن که خب این بحثی ما انجام میدیم با قول خودشون چند ورژه ذکر کردن که یکی مسئله تن به اختیار ده ورژه دوان دوم گرده به این که تجربه کاشف از سوء تجربه عبدالخبس باطنی و ها داییون جبقه هم فعلا متجربه در ایشون بعد این کار میکنی که نه سوه سریع خواهر قبول اما این موج رو خوبه فعل نمیشه همون بحثایی که شبیه شده شده امدهش وجه ثومیستی ایشان نقد میکنن که امروز این بحث سوم رو بحث ثوم اینست که تعلق قد وقتی قد انسان کدام کنه ایک فعلی قبیهه یوجه با خوبه بود اون فعل قبیه میشه ولی قد او به حسن حمله یوجه با حسنه قط سان میکنه که این شبه خه موجب قفلش میشه و ک فاعلی موجب حرمت فعل میشه. وخید کب خود فعل میشه و ق فعل هم مستلزم ما حرمت. این یک مقداری بحث لتیفییس این بچه سوم میشان که یک مقداری الان توزی شهز میکنن وجه سوم اینطوری است که اگر انسان یقین پیدا کرد که این مایه خمره خود این شرگ این مایه قبیه میشه اصلا انسان به اینکه این خمره موجب به خوبش میشه و به عبارت دیگر چون حسن و خوب از در اشیاء و در افعالی که هست در بعضی ها به وجوه اعتباراته در بعضی از ذاتیه چون از کریمه کخصیم سراسی معروف شده در لسان اینها که بعضی ها ذاتن مختزی یعنی ذاتن علت تامنه برای حسن قبه که ظلم و عبل باشه بعضی ها مختزی هستن مثل صدق و کیز. که صدق حسنه و کز قبیهه بعضی ها لایختزا هستن مثل زرد، خود زدن آب خوردن آب خوردن لایختزا در بعضی از جهات حسن میشه در بعضی هایت میشه. اون وقتی اینا بخواهم بگن که این شرب آب خود آب خوردن اگر انسان به عنوان خم رو گروه بخوره قص روی بکنه این اجاز جاز هست این خلاصه درست آبی رو که انسان میخوره چطور مثلا اگر دروغ بگه برای نجات مؤمن این نجات مؤمن جزو انابین ما هست نه هست و اگر راست بگه و درش مثلا فساد اجتماعی باشه جزو انابین مقبله هست خود قطع انسان ببین که این خمره این جزو جهات محسن و مقبحه خوده این. خود این که انسان قصد پیدا میکنه این این خمره خوده قطع جهات مقبحه حیث میشه این شربه آب به عنوان قطع و ا این قضی این خودش شربه آب نکه کار نزیم به شربه خمر نیست به شربه, شربه آب این شربه ما به عنوان ان هو شربه خمر محل قطع و ا خود این میشه شه این یک مطلب یک مطلب دیگه این که اگر قوی شدن حرام به قادر ملزمه. این بچه سوم است که آقای خویی قرار دارن تو در کلمات قبل از آقای خویی اما اما احساس به ایشان نداشون از کتاب یک کتای کتاب درسی که محل مطالعه مراجعتون باشه ارز کردن اون وقت ایشان بارد این دو بحث شدن بحث اول یعنی اینجوری بحث کردن یک سوال اینه که آیا قرد از اناوین و مقطعه مقبهه هست یا نه دو اگر خبه فعل در آمد آیا مستلزم و قرمه هست یا نه ایشون بارد این بحش اون وقت در صفحه 23 این مطلب اول که قرد جز اناوین مقطعه باشی یا نه یا محسنه باشه محسنه در این مقطعه در ات... تجربی ایشون دو تا اشکال نقل کردن از که از کفایی که از محقه ناینی عبد الله والسلم تقابلت كه اردم اومدم چون چیز خاصی نداره من دیگه بعدش مناقشه كردم با ما حتره نوعی نمی فذكر ان القاع طريق المحزن الى متعلقه لا دخل لهو في الحسن القصر چون قریب محزه ولی استدل بشم معلومه اینه استدلال نکردم فهمم هذا امر وجداني و دا ان هذا امر وجداني حالا با قول ایشون سالکفای استدلال هم اون استدلال نیست در این نیست به هر حال دیگه حالا خیلی ما در اون حرفا نیستیم که این ریزه این کارها بعد مرموع آی خویی به مرموع نامی اشکال کردن و اما ما ذکر حال محطق رو نایین صفحه بیستو چون مندر ولو بل وجدان بله ففیح اندل وجدان شایدان علا خلافه این همیشه از اون که تیسه اون باید این زیادان مو این وجدان و عقلی که این طرف میگه وجدانیست اون طرف هم میگه خلافش و وجدانیست یک حلی بهش پیده منده از وجدان ففیح انل وجدان شاه اون داره حالا خلافه دو تا وجدان و متخالف هم بگه و انل عقل شون میبتونن عقل حاکمون به قبل فعل متجربه یعنی عقل حفظ میکنه که این آب قویهه این آب به معنا انهو یعنی عقل یدرک ان الفعل الملکور تعدن على المولا و حد کن لحرمتیه یعنی این عقلی که بر انسان پیدا میشه با این عنوان قطع این با عنوان حد که برمولاست امسا از کردم مرموم استاد مثل استادشنان و آیستانی و دیگران باید همون بحث تعدیه برمولا و حد کن لحرمتیه و خروجون انوست و عبودیتی هی. و اندال فائلی از تحق و زم و لوم که خب در عبارات مرموم استادی یه مقداری باید تعمل کرد یعنی واقعا نمی فهمید استحقاق فائل برای زم و لوم یک چیزه اونه خودفرشی دیگریه به قصد کنی این که فائل تو میدونی این خمره من که اقدام جاید خب آدم بدی آدم آدم خوبی نیست اما حالا شربه آب هم قبیه داشه هر مشموم نهایی رو حواست ببین نمیگه که شرب و آب قبیل نیست شرب و آب شرب آب شربه آب که اولش آب خوردن دقت کردم خودت خاص نمیมา میگم نمیشه نه نه توضیح میدم من اجازه معنی کوچیکی میدم ببینید دقت بکنید ایشون میگه به ان الفاعل یستحق الضمبندا خب استحقاق فاعل یک مطلبه حرف مشموم ناهیلی و محل کلمه خدای خویش خودش موجب ضعف بحث این که این شربه آب یعنی قلب و اله قبیه هست آبی که فی نخصه قبیح نبود فرص از این تقسیل سلاسی شربه آب رو گیم لا اقتضا چون مثل سکت با که قرارش ندیم بگیم شربه ما لا اقتضا چون با این تقسیل سلاسی یا علت سامنس برای خبست یا مختصیل یا لا اقتضا علت این تقسیل سلاسی قبول بکنیم مثل ظلم علت سامنس برای خ مثل که مختزیه برای قبهه مثل زرب هم لا است یک جا حسن اینجا قبی بحثتر اینه که آیا این شربه آب حالا فرسن شربه آب هم جزء لا قرار قبارش ببین این لا به خاطر فکر این طرف این که خمره به ارتکابش به خاطر این جهت این لا, لا اختزا بشه قبی این سؤاله سؤال اینه اینه که لا بود چرا قصد پیدا سیداته این آیا تحت او تأثیر می فقط در قبع فائلی در زنب در فائل استحقاق لوم؟ یا نه تحت او اضافه بر استحقاق زنب فائل یعنی این شربه آب هم از حال احتضا در آمد این شربه هم قوی شد سوال موشن شد سوال کجا؟ سوال حقیقتش اینه که آیا شربه آب عبلش ایشون میگه وجدان شاهد است برای اینکه شرب و آب قبیله چه می‌ذاره بعد از ایشون رحمت به معنا انه یدرک ان الفعل المنسوب تعذن علی من دیگه چند وارد توضیح بده خطبتون کرد برای همین از تو ایشون میخواد تحلیل این وجدان بکنه و عرض کرد ایشون توی جهت عوام هم میاد این به حکم عقل هست که اطاعت مولا بر عبد واجبه که ما از سرین تصور نمی کنیم ما تحقیل نمی کنیم که حفظ عقل باشه که مثلا تحدیه بر مغلاب و حد که حرمت مغلاب و اینجور حرف رو حلایه حاله بعد ایشان کیفه بعد ایشون میگن کیف حالا استدلال دیگه میخویم بیارن مثل برهان نقیم برهان خوب بیشون میگه از اون بر ما میگویم انقیاد حسنه پس با تجاری هم قدید باشه کیفه بلا خلاف بینال اغلا این ذواتعقل غرض حسنه به معنا آنال عقل درک انه جرا علی وظیفه عبودیه این جرا وظیفه ال عبودیه رو فقط تو فائل لحاظ میکنه یا به فیلم لحاظ میکنه تمام نکته اینه تمام بحث اینجاست جرا علی وظیفه ال عبودیه سلم جرا علی وظیفه عبودیه این در فاعل لحاظش میکنه یا در خود فعل لحاظش میکنه تمام و ان الفائل مستحق للمده و سنا تأجیب از ایشه رو این نه فائل که فائل هست. و لذا انکره ادتون من العلمان دلالت اخبار منبلغ علل علال استحباب شرعی ایشون رو فرحی کرد خود این علمان خدا بر اون استاده ایشون منکره دلالت اخبار من بلغم و همزه ها علا ان المراد اعتاق العجر و من باب الانجاز البته تمسک به اخبار منبلغ، بحث اغلایی فعبد شرعی دیگه بحث شما اغلایی هم بود منواب الانقیاد خب این پس در انقیاد که جای بحث نیست من ان الانقیاد و تجری من سحف خوز منواد واحد فکر ما ان الانقیاد حسنان عقلن بلا خلاف بین الاغلا که داله لایم به شک یعن تجری تجاری هون عقلن خب اینا هی تکرار مطلب, مطلب رو حل نمیکنه نظر به من این تجربی اگر خوبی هم پیدا میکنه به لحاظ خواهله یعنی من توضیح ایش را ارزو کنم خدمتون و اون این که ما که حالا شدیشون نه روشن من دیاره توضیحات ایش بکن. ما اگر آمد این تقسیم خلاصی رو قبول کرد بکنیم. یا علت تامنه یا مثل زر یا محتضی داریم مثل کس یا لا اختزاس مثل زر حالا کسی آن خورد و این به خیال اینکه خمره مخالفت با مولاست مخالفت با شارع مخالفت واقانونه با بامنشود عاق در اینجا همین تقسیم ثلاثی رو ببینید اون نکته فنی اینه الان مرحوم استاد وارد نشدن ما به توضیحش اون تقسیم ثلاثی رو در هر دو در نظر بگیریم اون نکته فنی اینجاست یعنی اون تقسیم ثلاثی رو هم در فرمول ما در نظر بگیریم هم در فاعل در نظر بگیریم خلاصه برس اینه اون روح برس اینه یعنی این شوربالما قبل از اینکه به عنوان خمر باشه این لا اختضا بود روشن شوربالما لا بود حالا بعد از اینکه که قبل کرد که این خمر بخور آیا از لا اختضایی در میاد میشه از قبیل کز که که اختضای یا میشه از قبیل ظلم که علت فامن وسعه مطلب اصل درکاتیه اون شرب و ما قبل از اینکه خیال کنه خمره قبل از اینکه فرض بذاره خمره این تو این تقسیم سه‌لاسیه ما جاش معین بود لا اقتضا یا علت تامه یا مقتضی لا اقتضا این تقسیم سه‌لاسی رو بکنی شرب و ما که یکی از وجود تو لا اقتضا بود قبل از اینکه به عنوان شرب خمره بشه تو لا اقتضا بود حالا به عنوان شرب خمره شد آب رو به عنوان هم خورد و آب هم در آمد هم نبود سوال اینه از باته استاد روی عبادتون توضیح کافی ندادن ایشون میگن الان قبیه لیکن از ایشون این سوال میشه که از قبیل به یعنی مختصی یا از قبیل ظلمه یعنی علیت تام <تصفيق> یا عوض نشد همون لاقضی هست این سه تا احتمال روچنجون سه تا احتمال در شروع آب هست یه به همون لایستوزه خودشه عوض نشد اول هم لایستوزه بود حالا لایستوزه هست خیال این که این مثلا این عوض نمیکنه، و هم همون حالت خودشه دو این مختصی میشه. سه این علت تامه خوبه میشه ایشون فرمزن تعذن و ضرمانه حالا من عبارتی ایشان نمیدونم چی معنا باتم چی به نسبت دادن ایشان به جای این بحث باید این نکته رو توضیح می دادن این کاری که در لا بود به کدون یکی رفته به علت تامه شده یا مختزی شده ظاهر عبارتی ایشان اولش اینه که مختزیه لکن ظلم و این هر مطرح مزرح کردن خب ظلم علت تامه ما با ایشان اینه ما اعتقاد داریم که این شوربول ما که لا بود هنوز هم لا بود شد این شرب الماء لا اختزا بود باز با تجریه هنوز هم شرب الماء هنوز هم لا اختزاست عوض نشده خود شرب الماء دو به لحاظ سوء سریعه فائل و خوب فائل اونجا هسته بحث میان فهمون کنم اینه که فائل در مقام ایسیان بوده اینه که فائل در مقام مخالفت با نظام بوده مخالفت با مولا بوده گوده قدو کنیم این به عنوان فائل یک خبهش قبیل ظلمه علت تامبست دو از قبیل مختبیه مثل که دید سه اونم لاستداز خودش چی نداره درسته؟ چرا؟ چون تابع واقع آب کورده همچنان که آب کوردن خیلی لارستداز فایل هم اونه لاستداز خبشان شد بحث. نهایت بحث لقت بحث کجاست؟ اونی که در زرافت بحثه اینجاست شما باید این دوتا رو با هم دیگه تفکیق نکنید. یکی قبر فیل، یکی قبر خارج. در خارج بدون در نظر گرفتن خارج. خارجی اصلا داره. از هر نسبتش که نه هیچ بدون نیت کاری انجام نمیده. نه. خود زر شما بگن آقا زرد چی رو بکنی؟ میگن نگاه کنیم زرش احسان بود خوبه. زر رو خود اما بحث سر اینه که خود کژ، کژ ها میگن چه مثل زرده، اختلاف ما با غرب یه بحث اخلاق اینه که مثلا مثل شرب. مثل شرب ما، مثل زر شما ضر رو چی میگین این افه حسن میگین نه بین افسه نه اقتصای حص داره نه اون میگهن که... اسکز رو همینطوره این کل پین سراسی الگر ال مایه حالا میخواه باده بحثش بشن فعلا. اونی که الان در دنیا در مرحح اینه که کفدم مثل ضرد لا اقتصاات اختزای قبه نداره. این ذهنیت شماست اشارم اون که اونثق هم همین که خب اون در ظهرد میگن. اصلا در این لا خود کیف هم لا اختزار. حالا ما اگر این تقلیل اگر این تسیم قبول کردیم اگر این تقسیم سواصی رو قبول می کردیم به من توضیح بدم اگر این تقسیم سواصی رو قبول, قبول کردیم که سه بخشش کردیم علت تامه مقتضی لا اختزار. علت تامه مثل ظور مقتضی مثل ک اصلا به این ک بینینزه قویهه این با آثاری که گش متصل مییم. مثل ضری این که کسی نباشه قبیله این که انسان یک کار نشو بده که خلاف رو واقع باشه خود این کار قبیله خوب بساز بکنه این همون بحث معروف اخلاق در دنیای نرمه اینو میگن این کار خوشینات ربی میگن ایشون قیاس و اهداف رو در نظر لا اخtezaz این مبانی در اخلاق مطرحه اینه حالا ما اگر این روشن روشنفکری تقسیم ثلاثی سل... رو این تقسیم ثلاثی رو قبول کردیم به ما رو گذشتیم که لا سوال شربه ما با عنوان شربخن از لایق ددا خارج میشه میشه مثل که؟ قدیل میشه؟ البته علت یا میشه مثل ظلم میشه علت تامه این که ایشون میگه ظلمان حلال مولا ایشون میخواه درشیدار درشیدار من نسبت ندارم ایشان چون این مثالی است که لوازم کلام من نمی‌کنه نسبت به مطلب بگیم ایشون میگه حالا همین فعل همین شرباء بر خاطر اینکه عنوان شرب خمرش انطباق کردیم این ظلمون یعنی علت تاملهم چه طبق تعریفی که ما چهار پنج شرباء ذکر کردیم این با تفسیر نظام عبد ممکن درست میشه این با تفسیر نظام عبد مولا ممکن درسته اما با تفسیر نظام قاری وجود خلاصه نظر خلاصه نظر این است که این بحثی که معروم نایمی ادعای بجدان میخوام توضیح بدم پس بحث اول این قبه فاعلی اگر قبول کردیم قبه فائلی رو یسری علالفه به معنا فعلی که در لا اختضا بود در بیاد یا به شون مختصی یا به شون این بحث اول بحث دوبه به لحاظ فائلی چی سؤال اصلا همین که انسان بنا داره مخالفت مولا کنه خوب دقیق چه در نظام قانونی چه در نظام عبدالبولا فکر بکنیم خود همین بنا گذاشت مخالفت مولا کنه بنا بزشت. این بنا گذشتن برانو فائل نسته فیدش که شربه ما بود خود این بنا گذشتن این که در قلبش هر که مخالفت مولا کنه یک مثلاق ظلم یعنی اون حسن و قبعه که ما مفرح کردیم اضافه بر افعال در صحاب هم اجراش بکنیم یا به تحبیق اوستاد در مقابلش انقیاض خود انقیاض مسئله یک انسانی بناسی در یک کشاری گذیر به قوانین کاملا مصیبی باشه انقیاض باشه خود این عنوان حسنان مثل عقل قبلت تام برای حسن مثال استاد اگر خوبه این قیاد رو با تجربه بگیم یا چی نفسه مثل عرض نیست مثل خد و کذبه مختصیه تعمل کردیم اینهات چطور مثلا چه تو شما میگنیم سخا... که از سخابت اینکه اصفات خوبه انسانه شجاعت اینکه خوبه بگیم ما حسن قبع ذاتی رو که می میکنیم این اختصاص به افعال نداره به صفات نفسانی هم میان حتی انشاءالله عرض میکنن توی صفات نفسانی هم اختصاص صفات نداره به مجموعه ی اندیشه ای انسان میاد مثلا بگیم ایمانه به توحید خودش یک حسن ذاتی داره به خلاف شه این خوب اضافی داره اون حسن و خوب اضافی رو بق... اضافه برکه به صفات نفسی هم ترایت بدیم دو اضافه برگو به مطلق امر باطنی و اندیشان انترایت بدید مثلا بگیم اندیشه توحیدی اندیشه حسن حسن هون لذاته مثل عبد شرک ظلمه قدیه هون لذاته یا بگیم نه توحید مثل صدقه اقتضای حسن داره شرک هم مثل کذبه تام تامونی یعنی همشانس این حسن قبرا اطرا درد سهل اغوردن در کلام مثلا در فلسفه در سهل اغوردن ما اون رو در صفات هم ببریم مثلا نگه این بخ اصلا صفت بریه مثل که سخاوت صفت خوبیه مثل صفت یا به یک معنی آمی از کلیمون شعر محبوب مولاده اون همین مولادش این برادر تا همین اندیشه ای اون اندیشه رو به یک معنی عام گرسه که شامل عقاید و افکار یا اصطلاح روز ایدولوژی هم زولوژی هم بشه مابری تو استحان و ریشه خب راست می بینه جاز ظاهری تو معنی از استخواان ریشه زار مورد سیستم عصبی بدن باشه، اصلان سیستم گردشی خون باشه چ بمثل در بدن بریه وقتی ظاهرا مورد سیستم عصبی باشه. ماوری تو استان گرال اندیشه از گل گلکننی خوب دت بکنید ور باید خاری تو هیه گلخنی، یعنی تو وجود حقیقت تابع اون انیشه اون اندیشه پس این دقیقه این کرد؟ این حسن و رو اضافه بر رو زد به اندیشه به حقیقت انسان اون حقیقت وجودی تو اون اندیشه تو اون دیگه فقط شامل افعال دید شامل سفات هم میشه شامل فکر و اندیشه هم میشه بیاییم ما این سقس رو بگیم به, اند... به... به سفات هم بزنیم و سبعا این بحث پیش میاد، مثلا سخاوت، بخت یک انسان ب یکی از ترسوه یکی از صفات فردی انسانه آیا ترسو بودن ظلمه که بشه علت تامه قومه یا ترسو بودن مثل که به بشه مقتضی قومه یا مثل از ترسو بودن خودش این نداره یکی نداره ترسو بودن یکی نداره مثل ذر نه اختضای قومش داره نه اختضای قومش داره حسنه از این قبیل انقیاد به تعبیر استاد انقیاد مولا و تجریه مولا سوال اینجا شد خود تجربه حالا مولا بگه یا قانون یک کسی بناش میگه درو حالا فرض کنیم یکی که حالا نمیشه بگه اگر فرصت پیدا گوش نادید خوب یا آب پیدا نمیکنه اگر فرصت پیدا بکنه همه کارهای زشت حاضر انجام میده فرصت پیدا میکنه یا اگر فرصت پیدا بکنه همه کارهای خوب رو میخواد انجام بده سوال سؤال اینه الان. یک اصلاً چیلون حالتی حالت انقیاد یا حالت تجربی به لحاظ خوب دفت رو کنیم فاعلی لحاظ خود این حالت در این تقسیم سلاسی اگه قبول کردیم جایگاه کجاست یه صفت است مثل صفاوت یا صفت بریست مثل ترسویی که این ترسوی و صفاوت رو قرار بدیم جغل به اصدا قرار بدیم برای مرحله اختضار مثل سرگوکه دوش بدونیم روشن شد بس چیه؟ حقیقت بس؟ حالا اصلا کار به فعل نداریم فعل و عنوان خن بود خن رونده اصلا خود این حالت چیه؟ این حالت حالات کو بیا همین که این نلعب لیه لع هم لیه همو سیعه همین که در رواید داره رفته برای کار حرام انجام بده محفظ نمیشه رفتی که پرسن ا خود این حالت در این تخصیم سلاتی به عنوان فائل توان این در کدام قسم این قرار میگیره؟ میگیره میتونیم بکنیم قبیه هستن این حالت یا نه یعنی به عبارت مخوراشون حالا اینش را باید عرض میکنم اون بحث محروب و حسن و بحثاتی و آقایان امید را منع استحقاق گرفتن اصل خود این صفحات استحقاق مدوزن داره یا نداره این صفحات نفسی هر که مرحوم نایینی گفته الله حافظ اونطوری که ایشون گفته من. تو جزء ذهنی منواز نسبتا تمام نمی هر که مرحوم نایین اینه خوب دقت بکنی این اوهی که در تجربی به لحاظ فاعلی هست این خب در این تجری در معذل خیالی در این قسمت این اوهی که به لحاظ فاعلی هست این سریان نمی کنه اون فعل رو به نفسه عوض بکنه این اون اون سریان به اون نداره مرد کنم ایشان که در تجریز محصد خیالی است و تحلیل که ایشان میده امر وجدانی ببینید اون امر وجدانی که ایشون ادعا میکنه انصاف قضیه هر با ایشانه وجدان اقواش شاهده لر این مطلبه توضیح این مطلب حالا منیم در مراد جدیشانشون تصالی هم به حقیقتاتیشون مراجع نکرده اینجا فقط به نقل مرموستاد دارن در اعتمال توضیح این مطلب عرض کردید ما در اون تخصیم مثل صدق رو دقیق بکنیم یا مثل زر رو یا لا اختزاس یا محتضیه این به عروض جهت محسنه حتن میشه حتی اگر پیزاته اختزاه مثلا خوبه داشته باشه مثلا چیز تو اما موجب نجات افرادی میشه حسن یعنی نجات نجاته محسنه خوبه زر لا اختزاس به عنوان تعذیب میشه اصلا تعذیب میشه جهت اون هست خیلی واضحه لایق من معنای حرفش اینه که غضب یک صفت نفسانی که هیچ نیست مندرک که در است شانش طبیعت ثرده خوب دقت بکنید توجه بکنید غضب تعذیب نیست غضب نجات مؤمن نیست عنوان نیست اون که روشن شد مدعای مرحوم نایم. نایمی؟ مدعای مرحوم اینه که در چون طریق صرفه اون که شهنه و طریقیت و صرفه این ایجاد چیزی نمیکنه. کنه مثلا فرصیم شما یه دونه سیب پس مقابلتون یه شیشه بگذنه از پشت شیشه شیت سیب رو بگذینی این شیشه تأثیر در سیب نمی کنه. نه چیزی در سیب اضافه میکنه نه چیزی از سیب کم میکنه. و شایدش مراد نهایی چیه؟ مراد نهایی اینه, اینه که اونهایی که صفات طبیعیت سرز دارن اون صفات نفسانی که طبیعیت سرز دارن طبیعیت سرز نمیتونه جزء جهات محسن و مقبله بشه. چون شانی طبیعیت سرز. هیچ کار نمیکنه. ما رو به کلام نهایی اضافه کردم. بله، اگر اون صفات نفسانی این در طریقیت سر جهتی داشته باشه ولی بله ممکن جزا جهات ما باشه مثلا اگر شما رفتی این سفر ترسیدی این که خطر باشه این ترس, حاضر ترس،, حاضر ترس، شما تمام بخونیم این ممکنه چرا شون حالت ترس یه حالت وجدانید که طریقه سر نیست یه مثلا ممکن در مثلا ممکنید مثلا اگر کنان دارو در حال ترس و حیجان بخونه موضوع بگون بلان. خب میشه در ملاکات واقعی یا میشه یا در ملاکات تعبودی اون صفات نفسانی که یک اضافه ای در مصنوع ایجاد می کنن. مثل حالات فرح خوشحالی خوشحالی اضافه درست یا حالت حرم یا حالت خوب اون حالت خوب این ممکنه اولت بکنه از جهات مخبهه بشه یا از جهات محسنه بشه در هم همینطوره میگم کلا قضا رو در حال قوا قاصبو کنی مزره با حالت اون ایجاد مرض داره تو می‌کنه این, ممکنه. این هم در ممکنه هم در امر تکینیه ممکنه هم در امر اعتباریش ممکنه اما اونی که سوال اینه ببینید اونی که شأنش فقط طبیعیت صرفه دقت کنید اونی که شأنش فقط طبیعیت صرفه این صفت نفسانی که شأنش طبیعیت صرفه نمی‌شود لزوما فقط به یوماحصله بله اینه که شریعت شرقیت صرفه میتره تو قبح فاعلی معثر باشه اشتباه با یعنی حالا تو واضح بود یقینی بود این خمره اقدام کردی؟ خوب دقیقه کنی؟ با وضوحی بیم این خمره یعنی واضحا که تو در مقام اسلام بودی واضحا وضوح داشت که خمره وضوح برای تو تو تمرد بودی این درسته؟ لذا من خیلی میکنم مرادش اینه اون رو صفت یعین کوب دقیق جهات مقدههی نیست اما به قوه بایی لحاظت میشه ترسیل میکنن این دو تا خلق نشه با همتر این تا چندش اینجا خلق نزن مولن ایشون باید این نکتر اثبات میکردن که <تصفح> صدفه کی ببینید اولت من هست نکردم حالا بعد نگاه کن نگاه میکنم تهد مردم آیاش مدلی رو، ببینید فذکر اندالقت است هریقون محزون علاو متعلق لاد داخل لهو فلخون و القاب و نیستادد میشین و دارند نهاداران رشد لازم این صورت هر بنا ی نیت این صورت بگذینی هر چیشانش باشه تصیب میکنه که این بسید که شیشه بسارید این کتاب از تو شیشه نگاه بکنه این عوض نمی کنه شیشه که عوض نموید روی همونه طریقیت صرف عوض نمی کنه بله اگر شیشه رنگی کردی عوض نمی کنه معروفه که یک کسی مثلا برای که هست که آبخاره مثلا اینکه سرزید در روی که خیال کنه مثلا جوه یونجرز می کنه خانی شوخی به عوض رو بگه ممکنه این اون مطلب جابجا جا بشه. اما اونی که طریق صرفه شیشه سفیده که اثر نمیکنه که. به انصافاً به نظر من از مثل مطلب نایینی وجدانی انصافا این من همیشه از نایینی در وجدانی و تو اربی استاد فرنم. به نظر من مطلبیشان کاملا وجدانی به این معنا قبضه قطعه کنید. اینی که طریق صرفه جزب جهات محبهه و محسنه نیست. اما این در تأثیر قبه فائلی چرا؟ چون هرچی که طریقش واضحتر تر باشه نشون میده این شخص بیشتر در مقام مخالفت بوده برای قبه فائلی خوبه دقیق بکنیم در جهت قبه فائلی خیلی خوبه بلکه هر چی او رو اوشندتر واضح تر قطعی تر با شواهد بیشتر همین دلالت بر قبه بیشتر رو میکنه حرف نایلی و این ما یه ندازه بعدی اصلا تو میکنیم که نکات فنی خیلی لطیفیه این مطلب به لحاظ نکته فنی به نظر من تا متمامه اونی که طریقی سرفه جزو جهات ما هستن و مقبهه نیست مثلا یعنی پیدا کرد که این کلام صدق نیست این کلام چه دو نیست من گفت یعنی. این مثل این جهت وجهت میشه که اون چه نه عمل یعنی عوض نمی کنه. اون عمل نمیکنه اون که خودش خودشه تعصیر میشه در واقع باله بله این فائل به لحاظ قبح فاعلی تلقی میکنه اینو میشه قبول و انصافاً بعد از لثیا ولتی اصل مطلب رو میشه قبول کرد که به لحاظ قبح فاعلی حالا اون حد قبح چه قدری فردا انشاء در کلمات استاد مطرح نشون بحث دیگری و الا اصل این مطلب که این قبره فائلی یسری به قبره فائلی این انصافا روشن نیست این هم که ایشون فرمون ظلمون علم مولا تعددن و حت کن و حرمت مولا این زیر بناها شما توضیح دادیم خود این زیر بنا روشن نیست اگر این زیر بنا روشن بشه ملاک حرمت و استحباب و عقوبت در تجاری و منصر یکی میشه اصلا ملاک یکیه راه صندیش اینه نه این که قبل و پس برای به نظر ما در این بحث دوم که آیا قبه قائلی یسری علالفه که مرمومستاد بناسد اینجا مطرح کردن روشن شد که اگر مراد آقایان این باشه مراد این باشه که شخص فقط به مجرد قرد و خیال کارش عرض بشه این مطلب قابل قبول نیست و همین مطلبی است که من از کردم دل علمای ما آمدن و علمای احل سنت فرمونه میکنه گفتن اگر کسی قصد حرام کرد ولو حرام محقق نشد اما مقدمات انجام داد اونجا قدیه مثل یه قصد شربخم کرد رفت برای دکان شراب بخرد دکان بسته در خب ببینید قصد شربخم ببینی؟ یعنی آمد اینجا یک, عنو... یک چیزی آمد جهت مقبه شد اون جهت مقبه پول داد سوار ماشین شد تا در دکان رفت می سوال اینه این چون طلب بسته دو مقدمات پیدا کرد ممکن است بگیم اینجا برای با حرام واقعه نشده خب داره اما یقین پیدا کرد این خمره خب یقینش مطابقه با واقع نبود خب دقیق بکنیم یقین این مقدار یقین پیدا کردن به که این خمره این جزء جاهات مقدمه نیست حالا در ممکنن گفت ن از ولمان که انجام قبولت این باشم به بین رواد. ممکن است کسی قائل بشه که اگر مطلبه به مقدمات شد و رو هررام رو انجام نداد اون جزء جهت مقدمه است. مثلا سوار و ماشین شد که بر دکان شراب فروششی شراب بخره خود این سوار و ماشین شدن چون به عنوان شراب خری دا هر هربی خود این سوار و ماشین شدن ولو بعد انجام انجامشه بسیدی که اینجا فعلی ای را انجام داد بیدید دکستانی مقدماتی و انجام داد ممکن است بگیم ارتکاب مقدمات جهت مقدهه داره اما در ما نحنفی قصد فقط کهی دار که از کنید آیا تعلق قصد هم جز جهات مقدهه هست؟ هر سنایه اینه قصد ترید صرف ترید صرف مقدهه را نمیشه و انصافا الحق معه انصافا اینکه خودشون این جزء مقدمه نیست نه این مقاله نیست دیگه خود فعلی عنوان فعل ارتباطی مقدمه دقیقاً پس به نظر من حق با مرحوم نایینی است وقت ایشان مستلزم تغییر نمی‌شود صلی الله علیه محمد و آله